با شما در این فضا تنفس بکنیم و انشالله از این دقایقی که در اختیار ماست به نهبه احسن در جهت پیشبرد اهداف اسلام و انقلاب انشالله سود ببریم خب جمع جمع معنوی روحانی حوزه است و مقتنم است که از این اوقات به بهترین وحش استفاده بشه و انشاءالله مطالبی که می میشود مورد رضایت امام زمان علیه السلام, و السلام قرار بگیرد من به طور خلاصه به روش و منهج فقهی مقام معظم رهبری خیلی خداسه اشاره میکنم و انگاه به موارد و مطالب مصداقی و تطبیقی در چند مورد تا اونجایی که وقت اجازه بده انشاءالله اشاره خواهیم کرد و ساهرن در پایان وقت هم یک مدار بناس پاسخ سوالاتی در اختیار دوستان باشیم خیلی خلاصه اگر بخوایم روش و منحج فقی مقام معظم رهبری رو معرفی بکنیم در این چند نکته می گنجد که من به طور فهرستوار اشاره می کنم یک یعنی شاخصهای درسیشون این هاست که از اتفاق و اتماین رو ملاحظه می کنیم با اینکه برای این درس تبلیغی نشده و سرصدای ندارد از اتفاق همه ارکان فقه قویم شیعی و برهانی رو دارد ولذا خیلی های اهمیت است که به اینا توجه بکنیم و این ملاک ها رو مد نظر داشته باشیم <تصفيق> که هم خوب از این درس هایی که به عنوان درس های مقام معظم رهبری آمده استفاده کنیم و هم با همین روش درس ها رو پیاده کنیم پیش ببریم و عملا وجه و سبقی درسی و تدریسی حوزه های ما به این سو پیش برود اولین نکته در بحث ایشون این است که ایشون تکه بر فقه جواهری دارند خلاصش این است که فقه جواهری این است که ایشان اول از این بحثشون بر اساس برهان و استدلال است دو ناظر به اقوال فقها سه تفخص از آراء و استدلال فقها چهارم بله جمبندی و نتیجه گیری از مطالبی که با یکدیگر به تناظر و تقابل برخواستند حالی این نوع قنوم سنومی صحبت نکنیم یکی ساده و معمولی تر صاحب جواهر کارش تو جواهر چیز که این فقر رو ما فقه جواهری مینامیم که مرحوم امام فرمودند و فرمودن تکه بر این فقه بکنید چون ایشون با اون دیده تیزش می دید تیزش میدید بعد از ایشون کسانی خواهند آمد که به نام فقه چیزهایی میگن در حالی که این فقه ها پایه و ریشه نداره عمیق نیست ولو به روز باشد اما مبتنی بر پایه های قوی نخواهد بود و به اسم فقه چه بسا کسانی بخواهند فقه ما را از درون خالی کنند هزویشون تکی بر فقه جواهری داشتند، با اینکه جواهر مال تقریباً 180 الا 200 سال قبل است تحبولات تاریخی در دنیا در همین حوزه ای آفریقا یا آفریقا و خاورمیانه ما بسیار اتفاق افتاده انقلاب اسلامی در این 14 اصلاً خیلی از برنامه ها و لسان ها و تهوری پردازی‌ها ها رو اصلا عوض کرده است که تو جواهر که اینا نیست شیره امام میفرمون فقه جواهری علتش این است که صاحب جواهر یک به همه اقوال نظارت دارد نمیگه به ما چه قبلی چی گفتن غیر این که پشتبانه دوازده قرنه دارد و کار شده روش دوم انواع اقسام استدلال که آمده است نسبت به موضوعی چه اثباتی چه نفی در جواهر آمده است و سپس طرز جمعبندی و کنار هم آوردن اقبال و فتاوا تا اونجایی که ممکن است و در نهایت نتیجه گیری کردن به این کار سنگینیم وزنه است که کسی اینچنین بخواد تو فقه وارد بشه این خصوصیت در منحج فقه رهبری است دوم ایشون به اقوال فقه ها کاملا توجه دارند مشاهیر و محققین این از فقه ها که اینا چی گفتن تو این مسئله بایده نبه اونوان تقلید بالاخره اسطوره های علمی در زمان خودشون بودن معصوم نیستن ولی بالاخره متخصصن و قول عرب ها فنان بودند. خب اگر انسان از اون استفاده کنه کار خودش آسان میشه یعنی زمینه تحقیق امیق در خودش ایجاد میشه برد. که زیر ساعتهایی که قبلا ساختن انسان نگاه بکنه و اجتحادی اونا را, را یا بپذیرد یا تعدیل کنه بقیه خودش ادامه بده انسان اگر بنابرای همیشه از اول کار از اول راه شروع بکنه خیلی دیر به نتیجه میریسه بس راه زیادی رفته آمده و شما باید او رو ببری به نتیجه بلسامی رضا توجه به اقوال ها در همه بحثاشون و فقهای متعدد نه فقط یک نفر و دو نفر وجود دارند اینجوری نقطه قوت ایشون و منهج فقهی ایشون سوم به کلمات مفسرین در تفسیر آیات قرآن توجه میکنن اونجایی که استدلال متوقف بر بررسی آیه قرآن است. حالا ولونگه ما تو قرآن 500 آیه فقهی داریم. و متأخرین گفتن خیر دیویست آیه داریم. هر آیه‌ای که به ادنا مناسبتی بش از او حکم فقهی رو استفاده کرد مجموعاً دو هزار و دیویست آیه داریم. لازم کل آیه مربوط به فقه باشد این توی آیه انواع و اقسام احکام و مسائل است ولی یه قسمتش برای فقق قابل استفاده است ایشون به کلمات مفصلی توجه دارند مجموع بیان چی گفته صاحب اون تفسیر علی ابن ابراهیم چی گفته است مثلا در المیزان چه آمده است حسن این متاخرین هم سابق دیدن این توجه به قول مفسر در تفسیر قرآن ولو مجتهد خودش باید نظر بده اجتحادی ولی اونها زمینه رو ما آماده می کنند بحث رو روشن می کنند و انسان بهتر دقیقتر و امیقتر می در رابطه با یه آیه بحث بکند مثلا به عنوان مثال حالا امام مرتضى شیخ انصاري رضوان الله تعالی علی در بس و ما عمره الا ليعبود الله مخلصين له دین با اینکه فقیه ایشون و اصولیه ولی مته تحقیق و دقت و انشرون عمیق و تند است از همین آیات چهار احتمال و برداشت داره که این آیه چی میخواد بگین حالا ولی او فقیه و اصولی تخصصی توی فلس تفسیر کار نکرده ایشون ولی ذهن نقاد و عمیقی دارد خب اینسان ببین این چارتو احتمال رو نگه ما به این کارا کاری نداریم بیدیم تو لغت نگاه میکنه عمره یعنی چی، عبده یعنی چی، اقلاس یعنی چی، خونفه یعنی چی قیمه یعنی چی، معناش اینی ها را دیگران چود ما چه کار داریم خیر؟ خود شیخ انساری چند احتمال میدهد همطور که در استحاب شما ملاحظه فرمویدیم لا تنوازل یقین به شک، حدیث سوراره، که این و الا به کجا میخوره جواب شرط محذوف جواب کلام قبل تعلیل است چه چهار احتمال میآورد که این حدیث رو چگونه ما معنا کنیم این به کجا میخوره طبق هرکدون چی استفاده میشود خیلی مؤثره مقام زهبری نسبت به تفسیر هم نظر رو دارن تخ... اقوال مفسرین رو میبینن در مسئله چهارم لغت شناسی منابع ما عمدتا عربی است کتاب و سنت معصومین چاره نیست ما با زبان عربی یاد بگیریم حالا غیر از اینه زبان عربی ترین زبان است او رو کار نداریم غیر از این است که به ما دستور دادن تعلم العربیه موقعونی ابن قدامه داره این رواست اونجاست یا در اقانی آمده بباشید در اقانی که قال استاد و علیه و السلام تعلم العربیه فانها كلام الله الذي يتكلم به خلقت عربيتو یاد بگیر عربی زبانیش است که خدا در میان زبانها او رو انتخاب کرده خدا زیباترین زیبا هست پس انتخابش هم زیباترین انتخاب است حالا چرا تحلیلش بماند در لغتای امروز در دنیا همین مسئله است میان سه تا زبان تقریبا جزء کامل ترین زبان هاست عربی فرانسه و فارسی و اینا جزء زبان های خیلی کامله است استثناءاتش کمه تلفظش درست است حفظ شدنی اش کم است و حالا معیارهایی وجود داره که زبان ها در زمان بهتر است لغت شناسی ایشون همینطور. حالا انشالله یکی دو مرتبه مصاغی الان پیاده میکنیم وارد میشیم کهشون نظرات بدی و نوی دارند و در لغت توجه دارن این لفظ لغتش رو از معنا بشدن لغت رو اگر ما درست معنا نکنیم نه تنها به مقصود نمیرسیم، رسیم اصلا اشتباه میفهمیم. داستان معروفی هست که مرمو شهید متعری در مقدمه اصول فلسفه و روش رعالیس می که آقای از قرب اومده بود وقت اومد ایران وقتی اومد ایرانی دید برگشت در خاطراتش نوشت من به ایران رفتم و خلاصه چند چیز عجیب دیدم مثلا. یکیش این بود. به یه شهری رسیدم. حالا این من قذوینی اینجا داریم یا نداریم؟ می به یه شهری رستم به نام قذوین. اونجا صبح مردم گلم می شدن از دماغ همدی سوال می کردن. بگو من تعجب کردم مثلا جامنگ قطیه هر فقط از دماغ سوال می خب گفتن دماغ چطوره؟ مثلا دماغ چاقه؟ این خدا خبرش نداره که سوالت همه این دماغ نیست اون دماغ است و غین است هست یعنی مغز و اعصاب یعنی حالت چطوره آه. کیفه حالو کیفه اصبحته حالت چطوره دماغ یعنی حال روحیت چطوره نه اینکه بینی چطوره من بنده خود نمیدانست همین دماغ رفتون بینی مرگو و بعد تحجب میکنم شاید دماغ هم میکنه خب تو عرقی ما همینطور اگر لغت رو دقیق شناسایی نکنیم جور دیگر می‌شود. حالا نه در لغت ها در همه جاهای دیگر همینطور تو تاریخ هم همینه الان نگاه کنی چند سالی بود تو ایران بحث بود که آقا امام زمان کجا زن جزیره خزرا هستند یا نه کتاب نمیشن مسلس برمودا و جزیره خزرا بعد نه بابا از سادات فاطمی نفه بوده به نام سید مهدی فاطمی. در جزیره خزرا که در قندلوس ها تو دریا جزیره زیبایی خیلی سرسبز و خنک و نپشه داره نه فلان داره نه شرجیه باسفاز میوه الاخر اونجا زندگیه بعد یکم کم شد مهدی فاطمه بعد یک حضرت آب اونجا, اونجا, اونجا الجزیره تو خزرا بعد دفتن از تو روایت میگه دو دوتون معید پیدا کردن که هاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا حزب اونجا هستن و اونجا آبش یه شکلی دیگه از هواش یه شکلی دیگه از قوانیش یه چیز دیگه از زن و بچه حزب اونجا هستن. حکومت مستقلی دونن هیچکی اونجا مراجعه نمیتونه بکنه و همین تحقیق نکن یه چیز شنیدن رو نقل کردن بعد کتاب نوشتم اثباتو نپدی و, اثبات و, و الی آخر لغت هم همینه برادر مثلا لغت عربی که به زبان وارد غیر عربی شده است من ایشا بیاور سوار میکردم. یه سوالی شریعا کو حاجی بعضی حرف نامحشور می‌زنن میشه شکایت کرد از دادگاه گفتم چی گفتم نامحشور گفتم نامحشور یعنی چی؟ ولی توضیح دادم نه اصطلاح استلاح ده ای ایناست نامحشور میخواد به حرف بدی میزنن گفتم نامحشور من اول به حشر رو روز قیامت رو یادم دنبالی اینا رفتم بودم چی میخواد؟ نامحشور نامحشور ظاهرم میخواد درگاه نامحشور نامحشور به چی میگن؟ خب لغت و که عربی تو عربی بود ببین چی معنا میشه نه اینکه تو فارسی ما ترکی ما انگلیسی رو چی آمده است ولی یه جور دیگه معنا میشوه مهریه همین صدقه همینه خیلی الفاظ داره ما مبهدیمیم صدقه داری زود دست میکنی تو چوری پول در میآگه بفرین بیا بپرسم فلان چی بود بهشت میگه صدقه دادن به پولی که به گدامی هم میگن صدقه اصلا تو عربی معناش این نیست صدقه صاد دارن از کلمات عربی است حالا من در امتحان میشه بگیریم یا نه ما کجا تشخیص می کلم عربی است یا غیر عربی آه چی آه چند تا حرف شش تا حرفه که اگر تو هر کلمه باشه حتما عربی است حالا یکیش صاد صداق محریه چیز کلمات مختلفی است و حالا خیلی کلمات داریم درست معنا نمیشه بر اساس روایت و آیه رو ترجمه میکنیم در رو که واقعی نیست واقع چیز چیزی است. لغت شناسی مقام وزن رهبری کاملا دقیق دارن تو هر بحثی لغت رو باریم و دقیق و اساس لغت های قدیم از اون سه ها لغت مسبا ها آن لغت هایی که قدما ها گفته و بیشتر به واقع نزدیک تر است پنجم موضوع شناسی موضوع شناسی خیلی مهم است مرموم امام در یک کلام فرمودند اگر یک فقیه قافل بشود موضوعی که در زمان قبل حکمی داشته الان نشناسه این موضوع رو که الان عوض شده و حکم دیگری نکند به خطا رفته است چه بسا به حسب ظاهر هر دو یه شکل دارن یه اسم دارند شکر مازندران و شکر هندوستان هر دو شیرینند اما این کجا و؟ فقیشی؟ آن کجا؟ نه مرمون شما شایر هستید برحمدالله خب به حسد موضوع شناسی باید کرد که این کلمه یعنی چی؟ همین حجاب همین توش میموندین هجاب توش موندن فوقات رد و بحثه چه کنن؟ اصلا هجاب به چی میگن؟ غنا به چی میگن؟ و آلت لحو به چی میگن؟ لحو یعنی چی؟ در قران ما چهار تا لفظ داریم که خدا اهل این 4 تا نیست لهو لعب لاغو باطل فب اینا چی ما غالبا میگیم نه دیگه این همونه دیگه لهو نه اون لهو لاعب لاغو لاغ یه, یه معنای داره لهو یه معنای داره خب در موضوع شناسی اگر ما موضوع رو درست تشخیص ندهیم حکم درست نخواهیم کرد کی موضوع رو خوب میتونیم تشخیص بدیم؟ که علاوه بر تحلیل لقوی برداشته عرفی هم باید مد نظر ما باشه عرف عام چی میفهمد؟ نه عرفی یه کشور، یه محل، یه زبان اقلاع دنیا عرف عام چی میفهمد؟ این در تشخیص موضوع خیلی دخالت داره که این موضوع چیست قضیه از موضوع حکم تشکیل شده دیگه یه موضوع بریم یه حکم حکم که میرود رو موضوع که موضوع ثابت شده باشه اول موضوع باید بیاد تو حکمش بیاد خب اون موضوع ما باید درست بشناسیم زمان معصوم به چی میگفتند حالا به بش... چی اما هم یکی شطرنج موضوع خیلی ساده شطرنج به چی میگن اگه به این ابزاری که الان داریم 48 تا خونه داره 24 تا سفید 24 تا سیاه یکی در میون سرباز داره سلطان داره فیل داره من بلد نیستم آن چیزی که اجمالا دیدم خب این تاریخش به زمان 2300 سال زبان معصومی یقینا نشاتنی نبوده این از بلژیک و اروپا و 20 سال پیش زبان اصالنشا اومدی ایران بوده یه چیزی به نام شطرنج رو بعدم رواج به شطرنج موقع چی بوده کارش چی بوده نحوه بازیش چی بوده چه خصوصیتی داشته تا بعد بگیم این شطرنجی که تو راه اومده حرامه کدوم شطرنجو میگه خب بله الانم میگن شطرنج خب یقینا این صفو موقع نبوده با این خصوصیات و با این بازی ها و ایچ دو ریاضی دیگه و چجوری جلو برن، عقب برن، حصف بکنن، چه بکنن، نکنن خب موضوع شناسی خیلی مهم است و رهبرینو دقت دارن از اطلاع یک از خصویات رهبری بعضی از علمای دیگه اینکه از اول تو متن جامعه بودن یک با توایف مختلف سر و کار داشت این نقطه امتیاز است انسان بهتر میتونه موضوعات رو بوده باشیننا تو هم روز اول اومده تو حوزه درس خوند و حددا سر حوزه و مسجد و کتاب کنه توی یه باصدس اینجوری را رفته او و علم و های زمان خودش وقتی موضوع رو کار نکرده نمیتونه تشخیص بده که دوای صابق گفتن همونی میگه میگه حکشن مثلا این ایشون از تو اینطور نبوده از اول تو مردم بوده در حال تبلیق بوده اون طلبه های خوب درس کنی که دره انگامی که در می کنن تبلیغم میرن یه امتیازی بر دیگران دارن مردم شناسیشون موضوع شناسیشون قوی تر از دیگران است من حال یه مثال بزنم و جدیس این مثال یکی از مراجع بزرگ نجف احناد راه مقاماشه که سال 53 شمسی دار دنیا رفت مراجعه بزرگ یه نفر را آوردن پیشیشون گفتن آقا ایشون دزدی کرده. آوردن که مثلا آقا حد الشریع جاری کن بس شبه. آقا پرسن کی دزدی کرده است؟ گفتن آقا نیم ساعت بعد صبح. رفته فلان خانم اونجا گرفتنش در حال دزدی بوده گرفتی میشه میشه میش. ایشون یکم فکر کرد و گفت خب پس این آقا نماز شبش را کی خوانده است؟ آقا آدم چقدر از اوضاع احزد بخای کسی که نماز شب بخونه میگه دزدی میره بکنه کسی که دزده مگه نماز شب میخواند یه مقدار آدم مناسبت موضوع اوکیم نگاه کن جدیس چه این مسئله واقعیت داره پس این آقا نماز شبش رو کی آقا خیال کنه میشه خودشه یه سر بازوزو بلند میشه وضو میگیره نماز شب میخونه مثلا بعد از یه دور همین آقای بزرگوار و خیلی بزرگ و مرجع اعلا یه بار رفته در یه مغازه سابون فروشی گفته آقا پنیر سیری چند است؟ گفته آج آقا ببخشیدینا سابون پنیر نیست خب بابا آدم نباید بین پنیر و سابون تشکیس بیاقی چه فرقی میکنه؟ همین الان ما دوره زندگی میکنیم شما اصطلاحات رایانه و نمیدونم گوشی بلد نباشین این آج آقا ثبات نداره علی معلوم اطمینان داشت به حسابونه پنی که مرجع یه هر کی خوب دست کند و اصلاحات علمی بلد بود و دیگه امور حمامه بزرگ و محاصل و زیاد ریاضتون مرجع دیگه مرجع میشه ولی عطاوات که داشت خوب نورون نور على نور بود دیگه اما خب بابا بین پنیف و صابون تفاوت هایی است خب چطور این آقا تشخیص نیم آخه پنیر رو باید سوپر یا حالا سوپر نبود و ما موضوع شناسی خیلی مزاح نیست اینها که کسی موضوع خارجی رو نشناسه تشخیص ندارد و به من ربطی ندارد ولی زامن مجمع امام تاکید کرد دیگر پذیرفته نیست از فقیهی که بگوید موضوع را باید اور تشخیص بده ما به دنبال حکم کردن هستیم خود نه تنها علمای حوزه نمپزره اور عوامم نمپزان چرا دو تا چهار تا قضیه دو رکن داره موضوع و محمول محمول حکم حکم شما دو چی بخوای پیاده کنی رو موضوع مگه میشه تو موضوع رو نشناختی حکم کنی مگه در فضای تخیل بگین اگر موضوعی با این شکل باشد پس این حکم را دارد حالا این موضوع این حکم این شکل را دارد یارو من نمیدونم این مثال به روز براتون بزنم یه 20 سال قبل در رابطه و مبارزه و مواد مخدر اهلش هستید یا نیستید؟ بله الحمدلله. ها فلان و الی از بسیاری از مراجع یعنی تحقیقی بود سازمانی چیزایی داره میخواد تصیب کنه در کشور فلان آبردم گفتن شما نگاه کنید مثلا کبودیات و اثبات نفشی شد تکبیل و تصدیق و فلان از اکثر مراجع سوال کردن اگر برای بشر zarar داشته باشد اگر فلان باشد حرام هست اگر اونطور نباشد اشکال ندارد کسی توی یه زمانه اصلا نمیدونه تریاک و هیروین و کوکاین به چی میگن بعد میگه اگر اگر اگر اصلا دوازده مرجه سیزده مرجه استفتا کرده بودن بالای ده داشته گفته بودن یعنی معلومه اصلا تخصول نمیدونن بند خدا دور شمیدن چیزی به نام تریاک اصلا نمیدونن تریاک به چی میگه تریاک قوای بدنی را میگیرد قوای روحی را میگیرد شغل آدم از آدم میگیرد بی آب رو میشود طرف ناموز فروش اقتصاد ممندکت را عبه میبرد به استعمار کرده ار نشناس اصلا به چی میگه نه دوازده سیزت را تقیه کرده آخه یکی بگیم تقیه کرده نمیخواد فتفار بوده زور ازش ماه بر توها بگیرن هنونه میگن اگر اگر نینه تریاک به چی میگن هروئین به چی میگن بلای خانمان سوز است که دنیا و آخرت اراده انسان رو از بین میبره غیرت انسان را از طرفو ناموسشو میفروشه که مواد بری گیر بیاره بعد این مرجعتا نمیدونهن از ته آقاینی که مواد مقدم خدی بودن اینا رو گفته بودن تا فتوا بگیرن تا مقابلمو کم کنن مواد مقدم خدی بعد مراجع اینجوری میگن اگر تو سیگار گاهی موقع میگن اگر هم مشخص نشه باحال که مشخص شده کامل چه ضرر هایی داره انو با اقسام ضررها و چشم رو گوش حل گلو بینی سیستم گوارش پوک شدن عمر حالا اینی که کم کم واضحه شده پزشکی داره نظر سریح میده خب موضوع شناسی لازم است در جای جای کلام ایشون خوش کاملا واضحه است ایشون خودش موضوعات رو کاملا میشناسه چون تو جامعه بوده، تو مردم بوده از این بوده، مرد جامعه بوده علوم مختلف رو بلد بوده هم تو سیاست بوده، هم تو تاریخ بوده هم تو علوم انسانی بوده، هم تو علوم شرعی بوده کتاب های خونده بوده، شرعیار تو محیط بوده در برخورد با افکار مختلف و حوض و دانشگاه بوده خودش بچه آخونده است خوب تشخیص میدی این موضوع چیست؟ یا در ارتباط شما فرق بکنید که این ثروت های که آهد از از از افراد میشه خب همیشه موجود در یک واحد خاص نمیمونه تطور بیداره بنابراین میان میگن فلان کنان در مورد فلان موضوع قاعده به حدیلیت در حالتی که در تطورش تغییراتی وجود داره اما در اصلش نه و اگر بهتر دیگه تو موضوعاتی جدید همینطور اما تو مسئله آمول آم بلوای سابقه دارد که از توقع نیست ده مثلا ده. فرض کنید نان سنگگ و تافتون الان این جز بدیهیات دیگه کسی اگر نان سنگگ قیمت شینقر ایش میگه اگر نان سنگگ این طور که میگویید قدش انقدر باشد حجمش انقدر فلان باشد این حکم ها دارد اگر نون تافدون گیرد باشد و ف موشید که نپرس تا دوستا بگه اگر اگر جزو واضحهات بدیهیات اولیات کف جامعه است اینو من از هم در مثال زدم ولی بله موضوع اینقدر جدیدی یا نه این آقا آشنایش کم است به عنوان احتیاط میگه اگر درسته اما اینکه وزیرش وقتی فقط کلیات این خلاف اون چیزی که امام است که نه یا بعد خودش متخصص باشد یا مشاور متخصص باشد باشه که موضوع کاملا برش مشخص بکند تا بتونه حکم میده به صورت کلی بگم اینه که مردم دین در آسمان است بیانش این است خودتون بده هر کار میخواد بول من نمیدانم زمانها از امروزه دیگر از فقیه ازی رفته نیست که این چنین بگوید او فقیه باید دین رو املاً بیا پیاده کنه تو جامعه یا با خود متخصص باشی یا متخصصی اینی مشاور در کنارت باشن به حدی از گفته اونو اطمینان پیدا کنی بعد عطف بده اینکه من نمیدانم نه نکته ششم ما از امرحب احتقاد به فقه پویا دارند فقه پویا در مقابل فقه جامد و ایستا فقه جامد و ایستا چیه؟ بگیم آقا دین یه موضوع محمول ثابتی داره از اول که پیغم تا روز آخر ما حق نداریم دخالت بکنیم عوض بکنیم قیدی بهش بزنیم و اله آخر موضوعات جدیدم یا وراد یا استثار. چه قهه پویا یعنی چه؟ یعنی باید احکام برود رو موضوعاتی که موضوعات هم تو روز زیاده هرچه زمانی پیش میاده موضوعاتی جدید داره پیش میاد اینهای دیگه نمیشه تحت قالب و اناوین قدیم پیش حد بکنیم و تفسیر کنیم معامله بای بک تو وسایلوشیه هرچه بگردی چه لفظه انگلیسی چه عربی هستم بای بک منداره. حالا بای بک نگیم بیمه بیمه که همه ماشین بیمه ماشین بیمه, ما بیمه بدنه بیمه نمیدونم ساختمان بیمه آتش تو دیدونم بیمه زیاده بیمه نمیدونم سلامتی فلانه بیمه چه است خب زیر مجموعه کدوم عقد سابق ببریم همش تو چون مشکل میشه اگه بگیم ما بیمه نمیخوایم استفاده نمی کنیم نمیشه تو اینجا بسید بانک یه کسی میتونه بگه من بانک استفاده نمیکنیم آقا بانک چیز جدیدی خارجی ها آورده و نمیدونم الی آخر نه ما به همون روش سنتی مگه دست من و شماست خیر آمده واقعیته خودش بر زمانه تحمیل کرده اگر بگیم اسلام بلد نیست و نمیتواند و ندارد جواب بگه عجز دین است خلاف اینه که پیغمبر گفته من هران چیه برای بشر لازم است تا روز قیامت گفتم حلال و حرام رو کل ما یقرب کم الله یوبعد کم ان النار یقرب کم جننه همه را گفتم در کتاب و علم اینها به اهلویت اسمت و تارت رسیده و با ابزار اجتهاد هرچقدر میخواد زمان پیشرفت کنم پیشرفت کنم کره ما و مرلیق و موشک آب و وسائل زیر زمین و روی زمین و موجودات سلولی و میکروسکوپی و نمیدونم کاشت رحمی و الاغ چی میخوایی بکن این فقه و این اسلام و این منابع ما کشش و گنجایش اون را که برای اساس قواعدی که ائمه فرمودن و پیغمبر به اسم اینها داده است بگوید که برو اجلس فی المدیلس فی المسجد و افته علینا القاون اصول و علیکم تفریق این دین پاس و خوز. اگر پاس و خوز با برهان حرف بزن ما به دنیا نمیتونیم میگیم قلط کن دهنتو تو ببانه هرچی من میگم باید با برهان باشه حرف بزنیم باید تحلیل کنیم باید تجزیه کنیم باید سوال و جواب بکنیم بر اساس عقل بر اساس تجربه آن، بر اساس حتی بنای و اقلا باید پیش بگیم چیز رو ثابت بکنیم نمیشه میید به ما چون اسلام در مورد اینجور چیزا نیامده از اون نقص اسلامی. به یقین اسلام دین خاتم و کامل است. خب فقه پویا یعنی یعنی این قواعد، منابع و ادللی که اسلام دارد و در اختیار ما گذاشته است، اینها را بکاو، رو بگیر، قدرت تطبیق بر مسلاق داشته باش و فتوا بده. منجمد نباش به ظاهر الفاظ که معناشی چی میشه منجمد نباش به فتاوای قدما هرون شیخ انصاری در رساله قائده ای داره تو هیچ آی و روایتی نیامده ولی کحک کرده بهش رسیده که چی چه معاملاتی جایز است در مکاسه محرمه ایشون گفته دیگه اون چیزی که در اون مصلحت عامه مفیده به مردم درش موجود باشد. ما با چنین قاعده تویش روایتی نداریم. تویش آیه هم نداریم. او این رو استیاد کرده. استنباد کرده. در باب معاملات. که چیزی معامله صحیح است. برزاد در رابطه با مثلا فرض کنه خون خریده و روچه خون جایز رو که یه مسئله روزه دیگه. جان انسان رو اون متوقفه. حالا غیر از باب استرار رو نمیدونن که اون نه. خود خون اگر مفید نباشد فقط برای خوردن باشد یا منافع قلیله داشته باشد نه حرامه جز نجاساته نجاسات معاملات جایز نیست اما اگر خون در یه زمانی رسید منفعت محلله قالبه مقصودتون لقلاء دارد مثل حالا مریض رو باش خوب میکنن مرده رو باش زنده میکنن هیوان اعزار رو انجام میدن اگه خون نباشه طرف میره. این جایز است و حلال البته بعد شیخ انصاری اولین بار که این حرفو خیلی خیلی جپیگیری کرد در موجه و ایجادن حالا به راحتی همه میپذیرن چون مسلماته جناب شیخ انصاری این قایده رو از کجا آوردی شما شو به من نشون بده رو نشون بده که ما آیه وای نداری پس از کجا شما این می زنی که معاملات عمدتاً امزائی بر اساس بنا و فهم اوغلاست اون چیزی که برای بشر و جامعه بشری مفید باشد و منفعتش رو ممنون نکرده باشد یه مثالی جدید دیگه بزنم که رزو ترد بشیم دوستان نستاغو تو مطالب خود رهبری وارشیم الان فروش میته به کفار جایز یا نه توفق نه. گربه سگ گوشت حیوانات غیر معکول و لحم غیر حلال گوشت حرام گوشت خود ما که نمیشه بخوریم. به مسلمان هم که نمیشه بپوشیم به کافر چی؟ کافران دو قسمان بعض از کفار اینان رو حرام میدانن حلال نمیدانن نوسته یهودی ها اونم گوشت خود نمیخوره مسیحی ها حالا اگر کسی ممن یستحلوه بود است که حلال میداند خوردن گوشت، خیر مکن رن بود سرگ و گربه رو خب آیا من میتونم نارد بفروشم یه کارپون اونجا زنم شبا میگردم تو خیابونه ها چه گروبست پیدا می کنم میفرستم کارپونه سادر زپش کنم زبش می من نداره میکنشن الاخر گوشش رو صادر کنم چی نماتقا غذا کرده گوش کم داریم یه میلیارد شهستت انجام میلیار گوشت رکنم گوشت گوشت گوشت بندو که پیدا می شه و اقرب اون ما رو مو قراردادم ببینم بسن که آقا یه مقدار این سگ و گربایی که شما میگید مزایما تو خیابونن الی آخرن با تیر تفنگ میذارین دار میکشن بعد بین میبرین مردام صداشون در اومده برای دولت بود اینا رو بکنید و به شوشه درو ما استفاده میکنین حلال یا حرام صادرات کدوم یکیش میگن آقا حرام چرا روایت مطلق گفته داره ولا اومن من یستحلو فروختن گوشت میته حرام است ولی به کسی که حلال میدانه، روایات دیگه حالا اگر می میم تحقیق کنیم ملاک این حرمت چیست است؟ چرا گفته حرامه؟ اون طرف من میسته یعنی خودش حلال میدانه برای یکی کافر باشه خدا حرام میدونه خب اونم نفوذی ها فرقی نمیگه نه آقا ما اصلا چینی ها که دین ندارن اهل کتاب نیستن حالا من میسته چرا حرام باشه؟ اگر ما اومدیم کشف ملاک کردیم نداریم منافع اقتصادی بود راه بندازیم آقا پولا در میاد حالا یه مصدق گفته بود به نباب صفحه بگو ما آقا شما رو بودیم سر کار که حلال و حرام خدا اجرا کنیم چرا کار کردن شراب سازی زدیم گفتو انگلیس ما رو تحریم کرده آمریکام که وام میخوایم نمیده روسیه هم 100 چقدر طلا داریم تاویل ما نمیده پول نداریم مجبوریم شراب تولید بکنیم دولت رو اداره بشه دیگه یکی از اختلافات مرمون مصدق چناب مصدق با نباب سرفت همین بود ما تو را آوردنی که شریعت رو پیاده کنی کارون شراب سازی فلان خب از پیش خودم میخوام میگم حلال و حرامه نه اون که بدعت هست زلالت و بمراهیست نه ملاک پیدا کنیم اشاره کوچیک فقط بکنم محکم آقای شهید سر در شرقش بر حربت و رسقا تون چارجت که چاپ شده یه مداره این اونجا آورده که چه کنه کار داره حلال من ممن یستهلو ولو روایتم داریم علت و حرمت باید ببینیم چیه؟ خب فقه پویا این همین متوقف نشو برای موسیقی قدم و هرچی گفتن همون درسته شکر الله مسایی هم زحمتشون رو کشیدن اونی که به ذهنشون رسیده است ولی من و تو اقناع این زمانی به مشکل برخوردیم منبع امام کتاب و سنت است. ببینیم چه باید کنیم؟ با اجتحاد میشود حکمی را در آورد یا نه؟ بله. میشود در آورد یا نه؟ ما احکام واقعی ثانوی داریم احکام ازتراری داریم عناوین مختنفد خب با این عناوین استفاده کنیم چه باید که چند سال پیش بود دیگه بعضیا تو مینا نمیترستم قربانی بکنن؟ یک مزبحه اونجاست یک قصابخونه قصابخونه هست و اونجا که می‌کشن نمیدونم از شروعو نمی‌شه از مرجع فتاوا اشکال نداره در بیرون از به نام اشکال نداره همه سحر صدقه که البته حتما باید اونجا باشه ایشون دلیل اسوحرجه بود یا دلیل دیگه اسوحرج نمیشه از طرفی قربانی باید انجام بشه تا کسی حج وقتی میره بتونه از احرامش هم در بیاد و وظایف حجم انجام داده باشه ایشون ادله اسوحرج حاکمه بر اینجا مرجای تقلیب همین مناسبت و سنجش یه عدله با همدیگه ولی تا حالا نگفتا چون موضوعش پیش نیامده بود تا حالا شروع نمیشد منا الان دید سالی دو میلیون سه میلیون بعد سالیت هج میرن نمیشود چه 50 سال قبل مرجایی داشتی میرن ما ایتون موسین حکیم صاحب مستم صدقل قربطل خیلی از اولان فتواشون این بود که انسان باید بینه مقام ابراهیم و کعبه 13 متره تو این مقدار باید تواف کنه و الا درست نیست مثلا به اون هجر اسماعیل که میرسه 67 مترش از اونه تو اونجا که میرسه بخواست 67 متر باقی میمونه پس بنابراین ما تو این مقدار خب آقا الان میلیونی میاد میاد یه صبتازورم باید همه این رو بکن به موقع و مشهر رو نمیدونم جاهای دیگه باید برن برسن انجام تواف رو انجام ندار انجام بدن تو اون مقدار تلفات میشه اصلا ممکن نیست. ولی میگم چند نفرتون مشرف شدید. گفت با عمره نمیشه جلو بری. حجر رو اسدو استلام میکنه. اونقدر شلوغه. نیم ثانیه قفلت کنی زیر پا رفتی. زیر پا رفتی اونجا. خفه شدین که یعنی بعضی جاها حاجی ها 400 تا 500 تا 300 تا پشت میشن همینه. یه خطای کوچیک حالا عمد یا غیر عمد جمعیت دو جا هزاران هزار می روزن رو هم دیگه خب آقا این بعد گفتن نه خیلی بیرون از مقامم می شود آقا همه فوقهای گفتن این خب بریم عدلده رو یه بار دیگه نگاه بکنیم چی گفتن ملاکشیه موضوعشیه تواف هم هم این طوره گفتن آقا تواف فقط باید تو حیات باشه این باله ها دو طبقه داره دیگه از, از اون جه نمیشه تواف به اینجا میگن تواف چون اونجا ساختمان کعبه یه مقدار اتفاق داره دیگه چون طبق دوم میری دیگه اونجا ساختمان نیست وقتی نگاه کنی. سه میری که این چی؟ این تواف کعبه نمیشه این تواف هوا میشه برد پس نمیشه برد آقای این دقت کردن نه تواف هم منوی لغوی داره تافه یعنی چی؟ یعنی دورت بگرد. حوافه نمی‌نی دیگه نمی‌میری طرف دوره بگردم شما آقا چه اون طبقه پایین دور بزنید تا فسق میکنه چه طبقه اول برید تا ف طبقه دومی تا همش طواب عرفان فسق میکنن پس اشکالی نداره آقا ها هیچ هیچکون فتوا نمیدادن خب به ذهن شریفشون نرسید بود خب هر چند بعد اینکه ساخته شدم بازم من از اون گفتن این تا ما واقعه بودن نه چرا نشدن؟ و چرا توافه؟ توافه لغتی ایبی ندار شما بالپشتبون کسی دور بزنی میگه داره دور خونه من میگردی حالا لازم که تو کوچه باشم اون پایین بگردیم از اون بالپشتبون هم بگردیم که توافه بهش من داری چیکار کار میکنیم؟ بیدارم دورت میگردم قراست هم داره دورم میگردیم ولی حالا دورم میگردیم بالپشتبون داره دور من میگرد پایین دورم حالا نمیگرد که چرا میگیم فقه پویا یعنی ملاکات رو در بر برمستاق تمرکز نکنیم خود رو ملاک رب داره. رو انابین موضوع که داره ملاکه اینا دا مستاقه ها در زمان زمانه صدر اسلام مستاقه هایی داشته الان مستاقه ها عوض شده جور دیگری شده است. نمیشه اون رو همون مستاقه بقیه رو دیگه قبول نداریم فقه پویا یعنی گوشت رو باز کن چشمت رو باز کن و ملاکات احکام را پیدا کن مخصوصا که امام یه جمله بلندی فرمود که فقر فلسفه عملی حکومت دین در زمین است فقر برای این اومده نه که استفاد به خودمون که میخوایم بودتدین زندگی کنیم پس باید زمین را بشناسیم زمان را بشناسیم زندگی را بشناسیم، آدم ها را بشناسیم، عدلده را جلومون بذاریم، بر اساس میعار اکساده کنیم. نکه هفتم، مقام و استظهارات نو و بدی ای دارند. با توجه به همین مقدماتی گفتیم، ولی زن و بدی هم دارن ایشون. که حالا به شمع دنها اشاره میکنم. زود بگذرم. دیگه ایشون، قوائد جدیدی را هم استخراج و استنباط کردن از خود ادله. الان ببینید برادران ما تو اصول، تو منطق، تو فلسفه با قوائد سابقه نمیتونیم پیش بریم همه مسئله ما رو جواب نمیده منطق بوعی فقط به درد فلسفه بوعی میخورد فلسفه حکمت متعالیه رو نمیتون تحمل کنه باید قوائد جدید بیاد قواعدی که در سابق بر ما گفتن کلیاتی اداره منظم پیچیده همگانی بروز امروز نمیتونه جواب بده یک قواهر اصولی جدید باید اختراع بشود که مدیر به کی میگن اداره یعنی چی زیر مجموع و لوازمش با چه اساسی باید تنظیم بشود؟ وی رو باید قبائد درست بکنیم قاعده اصلا قو... اصول همین نیست که تا حالا گفتن بر مطالعه آمده این قابل زیاد شدن هست چون اصول رو فکر بشر غیرمحصوم درست کرده با استموده از آیت روایات می شود جدیدی باید که خود رو ملصدار نیامد توی منطق در مقام حمل دو تا حمله دیگه درست کرد قبلا گوده هم دو قسم حمله اولی و حمله شایع صنای نه ترسید بلند بگید من هستم اینجا آه، گفت نه آقا حمل حقیقت و رقیقت هم یه حمله یه حمله که تو ارفان حمله ظاهر و مظهر. نه با اون حمله خیلی کار دیگه میشه استاد استاده ما طول جواری الله در قضای قضیه جدید کشف کردن ما قضایه شرطیه داریم مشروطه داریم تعلیقه داریم در وسط اعاده معبر معدومت تقلایی اخواران همه توش نوندن چیجوری این جمله رو معنا کنیم اشکال وارد داشت اشکال رو تا امیگش وارده حتی تا اسادی ریشون توش موندن که چه کنن متناقض حرف زدن اونشون یه قضیه جدید کرد. ولی با از نکرد که این قضیه ولی شرط و جواب داره ولی شرطیه مستلح نیست مشروطم نیست معلقم نیست مقیدم نیست این سو جدیدیست و اون مشکل حل شد خوب مقامون زهرمان بعضی از این نکات حالا من در این کتاب جهادی که مشغول بودم اون بحث و برسی ابداعاتی دارن ایشون نهم روششون نقض و ابراه است یعنی اونجایی که دلیل کسی میاره قابل قبول نیست با چند تا مثال نقض میکنن و اونجایی که قابل قبول هست با تعییدات عرفی پافشاری میکنن و صحتش رو مورد قبول قرار میدن یازده هم بله؟ بودید یا بیدار بودید شما ده هم تحقیقات تاریخی در همه مباحثشون دیده میشه امروز میگن تطورات بحث یه بحث در هر علمی از گذشتی شروع کنی قدمان چی میگفتن بعدی ها چی گفتن متأخرین چی گفتن معاصرین چی میگن و ما چی میگیم این تکوّرات بحث را بررسی کردم خیلی بواست در فهم دقیق و عمیق که این قاعده اول چی بود حالا چی میگن و چی شد حالا شما بندیشان یازده حالا اِتناب قواعد اصولی و فقهی کو مشخونه تو فهرستای کتابشون هم هست دائما از قواعد استفاده میکنن دوازدهم اِتناب تحقیقات رجالی در راسه حجیت خبر سقه که لازم است طبعی مبنا اسناد رجال باید بررسی بشه و بساغتشون ثابت بشه و راه های اثبات بساغت اجمالا و دیگر استفاده از کتب و نظرات اهل سنت به قول مرموی طلق رو جدی فقه شیعه نسبت به فقه اهل سنت مانند است بر متن از نظر این که در اون زمان حکومت دست غیر شیعه بوده فتحاهایی که در جامعه پتو اونها بوده اعمه با توجه به اونها جواب میدادن اون مقمای برژهی که به شاگردانشون منتقل شد و هنوزم دیگه ادامه داره به در کتب هست و کم کم به نجفم منتقل چونم کم کم تو این وادی آمدن که فقه اهل سنت ما باید بدانیم من خود این بار نگاه میکردم این موجم احادثه نوویه اهل سنت رو هفت جلد قطور رحلیست من برای ای موضوع یه انبلالالتبیگی خاصم تحقیق بکنم تو کتب شی اون روایتی که من پیدا کردن رفتم اونجا پیدا کردم بعد علاقه من شدم روایت اون بابا و همه رو ببینم او ماشاءالله چقدر روایات برای واشی اصلا مشترکه بلکه لسانش یکیه که تو همینجا میشه مبانی رجالی درست کرد اصلا لسانش یکیه ولی اون سند نداره و طبق مبانی کسی مبنای اون خاصو نداره نمیتونه بپذیره ولی از کسرت روایاتی وقت وقتی وارد میشه با یه لفظ با یه مزمون یا شبیه به او آدم میتونه مقنون جدید درست بکنه که نه اینجور روایات معتبر است آن خیلی فراوان که فقه اهل سنت هم ما باید ببینیم چون اهل سنت هم مثل ما هم فقه دارن هم اصول دارن هم رجال دارن هم موسط تحره و بحث دارن ولی بله مبنای هرکسی مبنای رو انتخاب بکنه و ببینه باید بررسی کنه چه چیزی را بگیرد چه چیزی را نگیرد کی موسطق هست کی نیست هست مثلا من کتاب های ما نماشه کتاب بیرم کتاب رجالی برادر نخصورتون نگاه میکنم اینا خیلی موسطق اون بحث کردن صحیح غیر صحیح فلان کی صاحب نیشابوری مصدق مستدک چی گفته فلانی چی گفته مصدق احمد چی گفته صحیح صحیحین علا فلان آخر خیلی بحثه کمک می کند به انسان در فهم درست مسئله ای که ما میخوایم از قرآن یا روایت اهل بیت ببینیم و بفهمیم خیلی موثره نمونهش ایوا کم مثال بزنم اون کسانی که در یه علم فقط تخصص دارن با کسانی که در چند علم تخصص دارن با هم فرق میکنه اون کسی که در چند علم تخصص داره مغز و محتوای بحث رو بهتر میفهمد و اون کی فقط تخصص در یه علم داره چرا شون نظام عالم نظام توهمی همه چیز به هم مربوطه هر چیزی یه رابطی یه تأثیر در چیز دیگه داره یادش بخیر ما موقعی که آداب متعلمن میکنیم حالا نمیدونم میخونن یا نمیخونن ای خونه اونجا میگه طلبه قبل اینکه تقلبی اول بره تو بازار کهم کاریگری کنه تو ما نه وازن نگرد اول درصد تاثیر میفولن بود برید کاریگری و خاصی بیکن بعد بیا تقلب بیشید میگو بره کاریگری خاصی بیکن تو عرف مردم باشی زبان مردم را و نوع رابطه با مردم را و مردم هم رو ببینید یاد بگیرید بعد بیا تو حوزه وقتی روایاتو میخونید بهتر میتونید بفهمید تو اون کسی که از پنج سالگی اومده تو حوزه فقط فرمالیته یه چیزایی رو گفتن بخون و افت کن اصلا در معاملات در باب اخلاق هم همینطوره معلومه یه مقدار تناقضایی داریم بعضی دنبال تفسیر و عرفان و همینیم گرام رابطه با هم نمیخونه این خیلی خوبه میگم مثلا الهی کلام کلامی درم به صبته مبونظری یا نه در رابطه با ارتباط با سلاطین ما چقدر روایات داریم به شدت سرزنه شده با سلاطین منو سلطون ظلم و جوره دیگه ارتباط نباید داشته بشی دور بشی دینتون دست میدید و و و خیلی فرابانه روایاتی میخوریم بله آدم عاقل کسی که با سلاطین کنار بیاید تو اهل کسی زندگیش آسان میگذرد که با سلطان زمانش درگیر نشود دو تا، سه تا، چار تا اه چجوری به آقا با سباتین میشه کنار اومد یا نمیشه قیمت زدم و با تحلیل کن اون رواید چی میخواد بگه این میخواد چی بگه در رابطه با آقا با ازدواج کردن و ازدواج نکردن چقدر گفتن آقا از شهابات دوری کنید تا نفسشتان رشد پیدا کند تحضیب نفس شهوات شهوات جنسی خوردن و شیرینجات خوردن تو عرف هم زیاد میبینه دیگه آجیل خور نباشید خوشمزه خور نباشید خوش خور نباشید فلان نباشید اله آخر قزار بخاطر لذتش نخورید و و, و و و و از طرف دردو یه روایته میبینیم آقا هرچی گیر اومد بخور نوش جونه زیادن بخور هنیت خدا بخور آقا لخواه کدوم رو اولیه رو باور کنیم که قالب ما طلبه ها همیشه همین اول طلبه گی میایم های ما اینه بوی قرن سبزی میده نون میخوسته نون خوش پسوسن ماست خوب صدای پدرم گفت درمه با با مادری با آب گوش بخور برنج بخور نه حضرت علی علیه السلام اونها نون خوش می خوردن خب ماست خوب بالاخره ما نفهمیدیم خوش و ماست باید بخوریم یا پلوام بخوریم ایشغال نداره هر دو جور روایت داریم با هم میخوری؟ با رو اهل سفون مید خب خب حالا بریم تحقیق کنیم اونایی که میگن نخورید یعنی چه؟ اونایی که میگن بخورید عیدی نداره و شاید تشواه همون اونا یعنی چه؟ تو ازدواج همینطور یه مثال بزنم بابا رسول بوکرلب هر شب همم میرفت و پیغمبرگی مبارز با نفس میکنه خود چرا هر شب حمام میره؟ نه تا زن داشتی در یه زمان پیغمبر زن پیغمبر که مشاله زیاد بودن، در یه زمان پیغمبر نه زن داشتی و پیغمبر عجیب اونقدر حمام رفت و یه کمردر گرفتی یه روایتی داره تو توحطوی چیزه المحجت و اومد به جبراییل ارز کرد یا جبراییل دیگه کمر ندارم چه کنیم جبراییل از طرف خدا وحی چی ها برد حریصه علیکه بله حریصه حریصه رو دو جور معنا کردن بعضا گفتن در وقت تمام شد بله جنبندی بفرمانش حالا خب. ازداره این یه دیگر بگم تا از جنبندی حریصه رو بعضا حلیم معنا کردن نه به درد این کار بخوره حلیم حلیم بخور طبق یک معنای دیگه در لغت اومده حریصه اون قضایی که توش نخود باشه نخود دو خدا اون کمره منوشه مکم میکنه علیک بل حریص بالاخره ما کدوم رو باور کنیم اون روایاتی که میگه تا میتونید از این کارا اجتناب بکنی یا اون روایاتی یه حضرت عیوب چند تا زن داشت حضرت داوود چند تا داشت نمیدونم امیرالمومنین چند تا داشت پیغمبر چند تا داشت و یه تعبیرایی دیگه بحث نکاهنیسم میخوام اونها رو بگم میخوام رو باور کنیم خب ما اگر مسائل فقهی رو همه جانبه با تخصص های مختلف نگم هر دو درست هر دوم با به جای خود درست حکم یه چیزی میخواد و حکم مطلق نمیشه بکنیم تا بعضی اصلا زن نگیرن میخوایم به کمالات نفسانی برسیم بعضا نه پیکار همین همینطور هر شب مثلا برن هم ما چه خبر آقا؟ رو درسته تو بکنه شب جمعه که گزشته خدا دیگه هر شب بگه چرا؟ آن نس برین نه ملاک دارد سیده تاوز به پسرش در فلاق سائل میگ که پسرم کاری بکن که اگر بتوانی توانی در طول عمرت فقط به تعداد فرزندی که میخواهی از تو به دنیا بیاید با همسر هم در همبستر و الا نه مثل اگه تا بچه میخواه بقید پنگ بار دیگه با خانومی خداحافظ خداحافظ یعنی چی؟ او رفا اینجور دارن سفارش میکنن اینا همه معنا دارن استاد میخواد متخصص میخواد فنان میخواد، کسی که تخصص و جامعیت در علوم مختلف داشته باشه بتونه هر کدوم معنا کنی این رواد چی میخوان بگن تو اشتباه نکنیم خب، حالا یکی دو نکته از مطالب رهبری که فرموندن ده دقیقه من حالا ظاهرم به یکی هم بیشتر نرسم. یکی در رابطه با این است که ما در فقه ما خوندیم که این روابط انسان با دیگری یا به صورت عقد است یا به صورت ایقا خب مقال مزرحبه در رابطه با امان اومدن یه ابتکار جدیدی به خرج دادن که ما لازم نیستیم و حتما ببزنیم وحیه منذر که نیست که همه ارتباطات انسان با انسان یا باید در قالب عقد باشد یا ایقا. ولی این معاملات به معنای اخستن ما یه معاملات به معنای اعم داریم که شامل نکاح و عمر وقت رو نهیز مکرم که اینو معاملتون ارتباط انسان با افراد جامعه هست یه معاملات برای اخست داریم که اقود و ایقاعات باشن در رابطه با معنای امان شون یه اشکالاتی به تعریف بزرگان و علما دارن میگن نه عقد اصطلاحی میشه این رو بگیریم نه اقاعت استلاحی اونی که برای سمر نشستنش و تحققش دو طرف لازم داره موجب و قابل سیغه میخواد سیغه ایجاب و قولوس نکاح مثل بیگ ایجاب قبول بخواد دیگه به تو اشتره تو یا قبل تو نکاه هم همین تو و همین طرف این ایقا یه طرفیه مثل چی؟ طلاق یک دیگر اطق دیگه چی؟ بلند بگیر چی؟ جاله, جاله. ابرازمه و, و, و چیزهای دیگه یه طرفیست با ایجاد و ادراز و اظهار از یک طرف حقیقت انجام میشه و در خارج اون حقیقت محقق می شود. ایشون فرمان خیر ما لازم میسیم تقسیمانیو بپذیریم که هرچی یا عقد و از جمله امان را میگن امان این چنین است این طریق که آقایین کرده هی میگن اقدس اقدس اقدس بله که باید بین طرف این باشد و در کلمات بزرگان ما آمده است این عقد معنای اصطلاحی نمیتونه داشته باشه چون عقد اینی که باید دو طرف قبول کنند در حالی که میگن در باب امان لازمیه طرف مقابل امان منو قبول کنه سکوت هم کنه کافیه من به در میگم به شما امان میدهم هیچ اظهار نظری نکنه سکوت کنه اظهار نکنه چیزی را این امان حاصل می شود پس عقد نیست حتما اون باید قبل تو بگه و بله بگه تا انجام بشه پذیرفتن بگه تا بشه عقل این نیست خب آقا ایقا هست یا نه میگن ایقا هم نیست چرا خلاصه دارن میگه ما. ایقا که با گفتن یه نفر و اراد و ابراز یه نفر محق طلاق طلاق دست مرد دیگه همین که کسی گفت زوجتی طالق تمام شد کسی به عبدش بگه انت معتقون آه. انتحور رون تمام شد چهالا عبد بخواد چه نخواد چه متوجه بشه چه نشه آزاد شد طرف یا در ظلم متلقه شد دیگه اونش ایغای طرفیه آنگه امان اینجوری نیست اگر شما امان دادی به کسی به یه کافری ولی که من امانتون رو قبول نمی که امانت مال خودت امان واقع نمیشه. این طرف اگر رد کرد آن اگر ایقا بود با گفتن مؤمن با همزه امان دهنده با گفتن مؤمن بعد امان واقع میشد و او در امان می بود اما شرعاً اینجوری نیست این مشروط به این که او رد نکنه اگر رد بکنه یعنی پس عدم رد او هم تأثیر داره موثر است ایگو من نمیخوام امانتو امانت با خودت باشه نه این امان شرعاً واقع نمیشه پس ایقا هم نیست پس نه عقد اصطلاحیه نه ایقای اصطلاحی شبه ایقا هست. بعد فقط مربوطه به باب امان نیست نمونه های دیگری هم ما داریم که همینطور در اونجاها نه دو طرف میخواد و نه با یک طرف حاصل می شود. لذا اگرم به امان گفتن اقدال امان که تو همه کتاب ها منویسن در شرایط علاوه در تذکره و دیگران می اینو مسامهی در تعبیر است مسامهی در تعبیر یعنی چی؟ یعنی مجاز است چرا مجاز است؟ این معنی اصطلاحی این معنی لغویه. اینجا عقد به معنی لغوی است یعنی التزام، تحود بعد دلیلم می که چرا عقد معنی لغوی و نه معنی اصطلاحی؟ مثلا اعبارت میآورند می است جناب علامه در کتاب ارشاد میگه و يجوز عقد العهد علی حکم الامام او نائب العادل. شونگه همگی کلمه عقد به عهد اضافه شده این اگر منظور از این عقد معنای اصطلاحیش باشه این رکیک هست معنی اضافه طول عقد العهد خود عفم این باشه بشه عقد العقد میشوه که معنا نداره. و ف... نمونه هایی میآورند لذیشون قائلن بله آقا ممکنه یک ارتباطی ارتباط معاملی بین دو نفر برقرار بشه نه از قسم عقل باشه نه ایقا ساعت چنده که ما از وقتیم تجاوز نکنیم 52 پنجو... خب ببخشید من نمونه های دیگه رو می‌خواستم بگم به اینجا رسید ظهرن وقت تمامه برادرانم چون ظهرن جلسه دیگری دارم منم پاسوق سوالاتم باشد که اینم توفیق نشد از کم توفیق ما طاهر بسیار خدا رو و خوشحال از اینکه در جلسه شما حاضر شدیم، برادران یک نکته خدا رو شاکر باشید. در زمان ما نه انقلاب شده بود، نه امامی دیده بودیم، نه موضوعات جدید به وجود آمده بود. نه این تحقیقات فقهی بود، نه اینها بود. الان برای شما اردو میگذارن. حالان نمیدونم پولم از زدتو میگرن یا مجالی میگرن اینجا؟ پول میگرن؟ و شاکر نعمت خدا بگه زمینه و بستر فقه عمیقه پویای شیعی داری اینچنین در اختار شما گذاشته می شود از یک طرف شکر و خوشحالی از این جریان از یک طرف احساس مسئولیت انشاءالله خوب بخوانید که انشاءالله شما باید تا 4-5 سال دیگه عالی هست دیگه باید به مرحله نتیجه برسید ارکان نظام ما در داخل یکی امتهای اسلامی در خارج دو استکبار جهانی یا ناآشنایان به اسلام سه منتظرن ببینن اسلام تو همه ابعاد نظر میدی چه میگوید اونایی که اهل انصافن بپذیرن اونایی که اهل اناد و دوشن تقابل بکنن باید آماده کنیم خودمان را رسالت ما جهانیست چون رسالت دین است امیدواریم با توفیقات الهی همگی توفیق و آمادگی این کار رو در رشته تحصیلی خود اون که آلفه از اصول و ورشته های دیگه به نه بزن، پیدا کنیم و انجام بدهیم. بسال الله علیه سیدنا محمد و آله تعبیین اب تا ایم. به شکلی بود که که که اون کلید بحثا باشه اینجوری در اختیار اصلی فروش ما بود شروع con los de dirección de programa y de política